مصنوی معنوی مولوی برنامه 128 امب در بیان آنکه نقض ععد و توبه موجب بلا بود بلکه موجب مسخ است چنانکه که در حق اصحاب سبت و در حق اصحاب ماهیده عیسی که و جعل من هم القردت و و اندر این امت مسخ دل باشد و به قیامت تن را صورت دل دهند نقض میثاق و شکست توبه ها موجب لعنت شود در انتها نقض توبه و عهد آن اصحاب صبت موجب مسخ آمد و اهلاک و ما پس خدا آن قوم را بوزینه کرد چونکه اهد حق شکستند از نبرد ان در این امت نبود مسخ بدن لیک مسخ دل بواد ای ظلفتن چون دل بوزینه گردد آن دلش از دل بوزینه شد خار آن گلش گر هنر بودی دلش را زختبار خارکی بودی به صورت آن همار آن سگ اصحاب خوش بود سیرتش هیچ بودش منقصد زان صورتش مسخ ظاهر بود اهل سبد را تا ببیند خلق ظاهر راب. از ره سر صد هزاران دگر گشته از تو به شکستن خوک و خر هم بار آمدن روبه بر آن خر گریخته تا باز بفری بدش پس بی آمد زود روبه سوی خر گفت خر از چون تو یار الهزر ناجوان مردا چه کردم من تو را که با پیش ها بردی مرا موجب کین تو با جانم چه بود غیر خبس جوهر تو ای انود همچو گشدم کو گزد پای فتی نارسیده از وی او را زحمته یا چو کو عدوی جان ماست نارسیده زحمتش از ما و کاست. بلکه طبعا خسم جان آدمی است. از حلاک آدمی در خرمی است. از پای هر آدمی او نکسلد. خوب و طبع زشت خود او کیهلد. زان که خبس ذات او بی موجبه هست سوی ظلم و عدوان جاذبه هر زمان خانت تو تا خرگه که دراندازد تو را که فلانجا حوض آب است و ایون تا دراندازد به حوزت سرنگون آدمی را با همه وحی و نظر اندر افگند آن لعین در شور و شر. بی گناه بی گزند سابقه که رسد او را ز آدم ناحقه. گفت رو روبه آن تلسم سحر بود که تو را در چشم آن شیر نمود، و من از تو بتن مسکین ترم که شب و روز در آنجا میچرمگر ن زانگوونه تلسم ساخته ای هر شکم خاره بد آنجا تاختی یک جهان بینوا پر پیل و اارج بی تسم کی بماندی سبز مرج. من تو را خود خواستم گفتن به درس، که چونان حول اگر بینی مترس لیک رفت از یاد علم آموزیت، که بودم مستغرق دلسوزیات دیدمت در جوع کلب و بینوا، میشه تابیدم که آی تا دوا ورنه با تو گفتم شرح تلسم کان خیال می نماید نیست جسم جواب گفتن خر روباه را گفت رو رو هینز پیشم ای عدو، تا نبینم روی تو، ای زشت رو. آن خدای که تو را بدبخت کرد، روی زشتت را کریح و سخت کرد. با کدام این روی می آوی من؟ این چونین صغری ندارد کرکدن؟ رفته در خون جانم آشکار که تو را من رهبرم تا مرغزار تا بدیدم روی ازرائیل را باز آوردی فن و تصویل را گرچه من ننگ خرانم یا خرم جانورم جان دارم این را کی خرم آنچه من دیدم ز حول بی امان، تفل دیدی پیر گشتی در زمان. بی دل و جان از نهیب آن شکوه، سرنگون خود را درف گندم زکو. بسته شد پایم دراندم از نهیب، چون بدیدم آن عذاب بهجیب. آهت کردم با خدا که ظلمنن برگشا زین بستگی تو پای من تا ننوشم وسبسه کس بعد از این اهد کردم نظر کردم ای معین حق گشاده کرداندم پای من زان و و زاری و ایمای من ورنه اندر من رسیدی شیر نر، چون بودی در زیر پنجه شعر خر. باز بفرستادتان شیر ارین سوی من از مکر، ای بیسل قرین. حق ذات پاک الله سمد، که بود به مار بد از یار بد. مار بد جان ستاند از سلیم، یار بد آرد سوی نار مقیم. از قرین به قول و گفت و گوی او، خود بدزدد دل نهان از خوی او. چونکه او افگند بر تو سایه را، دزددان به مایه از تو مایه را. عقل تو گر اجده های گشت مست، یار بد او را زمردان که هست. دیده عقلت بدو بیرون جهد، تانعود اندر کف تا اون نهد. جواب گفتن روبه خر را. گفت روبه صاف ما را درد نیست لیک تخیلات وهمی خرد نیست این همه وهم تو است ای ساد دل ورنه برتو نه غش دارم نه از خیال زشت خود منگر به من بر محبان از چه داری سوء زن زن نیکو بر بر اخوان صفا گرچه آید ظاهر از ایشان جفا این خیال و وهم بد چون شد پدید صد هزاران یار را از هم برید مشفق گر کرد جور و امتحان عقل باید که نباشد بدگمان خالص من بدرک نبودم زشت اسم آنکه دیدی بد نبود بود آن تلسم ور بودی بد آن سگالش قدر را عفف فرمایند یاران زانخطا عالم وهم و خیال تم و بیم هست راه را یکی صد عظیم نقش های این خیال نقش بند چون خلیل را که که بود شد گزند گفت خازا ربی ابراهیم راد چونکه که اندر عالم وهم افتاد ذکر کوکب را این تعویل گفت آن کسی که گوهر تعویل سوفت عالم وهم و خیال چشم بند آنچنان که را ز جای خیش کند تا که حازا ربی آمد قال او خربت و خر را چه باشد حال او غرق گشته عقل چون جبال در بهار وهم و گرداب خیال کوهها را هست زین طوفان فزو، کو امانه جزک در کشتی نوح. زین خیال رهزن راه یقین گشت هفتا دو, دو ملت اهل دین. مرد ایقان راست از وهم و خیال، موی ابرو را نمی گوید هلال، وان که نور عمرش نبود سند، موی عبروی کژه راهش زند. صد هزاران کشتی با حول سهم تخته تخته گشته در دریای وهم. کمترین فرعون چست فیلسوف ماه او در برج وهم در خصوف کس نداند روز پیزن کیست آن وان که داند نیستش بر خود گمان چون تو را وهم تو دارد خیر سر از چه گردی گرد وهم آن دگر عاجزم من از منی خیشتن چه نشستی پرمنی تو پیش من؟ بی من و مایی همه جویم بجان تا شوم من گوی آن خوش جان. هر که بی من شد همه منها خودوست دوست جمله شد چو خود را نیست دوست آینه نبی نقش شد یا بدبها زان که شد حاکی جمله نقش ها حکایت شیخ محمد سرزی غزنوی قدس الله و سره زاهد در غزنی از دانش مزه بود محمد نام و کنیت سر رزی. بود افتارش سر رز هر شبه، هفت سالو دایمان در مطلبه. بس اجایب دید از شاه وجود، لیک مقصودش جمال شاه بود. بر سر که رفت آن از خیش سیر. گفت بن ما یا فتادم من بزیر. گفت نامد مهلت آن مکرمت ور فرو افتی نمیری، نکشمت. او فرو افغان خود را از بداد در میان عمق آب افتاد. چون نمرد از نکس آن جان سیر مرد از فراق مرگ بر خود نوحه کرد کین حیات او را مرگ می نمود کار پیشش بازگونه گشته بود موت را از غیب می کرد او کدی ان نفی موتی حیاتی می زدی موت را چون زندگی قابل شده با خلاق جان خود یک دل شده صیف و خنجر چون علی ریحان او نرگس و نسرین عدوی جان او بانگ آمد روز صحرا سوی شهر بانگ ترفه از برای سر و جهر گفت ای دانای رازم مو به مو کنم در شهر از خدمت بگو گفت، خدمت آنکه بهر زل نفس خیش را سازی تو چون عباس دبز. مدت از اغنیا زر می ستان، پس به درویشان مسکین می رسان. خدمتت این است تا یک چند گاه، گفت، سمعا تاعتن، ای جان پناه، بس سؤال و بس جواب و ماجرا بد میان زاهد و رب ورا که زمین و آسمان پر نور شد در مقالاتان همه مذکور شد لیک کوته کردم آن گفتار را تا ننوشد هر خسی اسرار را آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر غزنین بازن بیلگردانیدن به اشارت غیبی و تفرقه کردن آنچه جمع آید بر فقرا هر کرا جان از لبایک است نامه بر نامه پایک بر پایک است چنانکه که روزن خانه باز باشد، آفتاب و مهتاب و باران و نامه و غیره منقطع نباشد. رو به شهر آورد، آن فرمان پذیر، شهر غزنین گشت از رویش منیر. از فره خلقه به استقبال رفت، او درآمد از ره دزدیده تفت. جمله آیان و مهان برخواستند، قصرها از بحر او آراستند. گفت من از خودنمایی نامدم، جز بخاری و گدایی نامدم، نیستم در عزم قال و قیل من در بدر گردم کف زنبیل من بند فرمانم که امر است از خدا که گدا باشم گدا باشم گدا در گدایی لفظ نادر ناورم جز طریق خگدایان نسپرم تا شوم غرقی مزلت من تمام تا سقطها بشنوم از خاص و عام حق جان است و من آن را تبع او تما فرمود زله من تمع. چون تماه خواهد زمن سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. او مزلت خواست کی عزت تنم، او گدایی خواست کی میری کنم، بعد از این کد و مزلت جان من، بیست عباسند در انبان من شیخ برمی گشت و زنبیل بدست شیل الله خواج توفیقیت هست برتر از کرسی و عرش اسرار او شیل الله شیل الله کار او انبیا هر یک همین فن میزنند. خلق مفلس که دیه ایشان می کنند. اقرز الله اقرز الله می زنند. باجگون بر انصر الله می تنند. در بدر این شیخ می آرد نیاز بر فلک صد در برای شیخ باز. کانگداوی کانبجد می کرد او بحر یزدان بود نز بحر گلو ور بکردی نیز از بحر گلو آن گلو از نور حق دارد گلو در حق او خرد نان و شهد و شیر به ز چلا وز سروزه صد فقیر نور می نوشد مگو نان می خورد، لاله می کارد، صورت می چرد. چون شرار کو خورد روغن ز شم، نور افزایت ز خردش بحر جم. نان خور را گفت حق لا تصرفو، نور خوردن را نگفت است اکتفو. آن گلوی ابتلا بود وین گلو، فارغ از اصراف و ایمن از گلو. امر و فرمان بود، نه هرس و تمه. آنچنان جن هرس را نبود، تبع. گر بگوید کیمیا را بده تو من خود را، تمام نبود فری. گنج گنجهای خاک تا هفتم طبق عرضه کرده بود پیش شیخ حق شیخ گفتا خالقا من آشقم گر بجویم غیر تو من فاسقم هشت جنت درارم در نظر ورکنم خدمت من از خوف سقر مؤمن باشم سلامت جوی من زان که این هر دو بود حز بدن عاشق که از عشق یزدان خورد قود صد بدن پیشش نیرزد ترتوت تر وین بدن که دارد آن شیخ فتن چیز دیگر گشت کم خانش بدن عاشق عشق خدا وانگاه موزد جبرائیل معتمن وانگاه دزد آشق آن لیلی کور و کبود ملک عالم پیش او یک بود پیش او یکسان شده بود خاک و زر زر چه باشد که نبود جان را خطر شیر و گرگ و دد از او واقف شده همچو خیشان گرد او گرد آمده. کین شده است از خوی حیوان پاک پاک. پر اشق و لحم و شهمش زهرناک. زهر دد باشد شکر ریز خرد. زان که نیک نیک باشد زد بد. لحم عاشق را نیارد خورد دد. عشق معروف است پیش نیک و بد. بر خورد خود فیلمسل دامو داداش گوشت عاشق زهر گردد بکشدش. هرچی جز عشق است، شد معکول عشق، دو جهان یک دانه پیش نول عشق. دانه مرمرغ را هرگز خورد، کاهدان مرعصب را هرگز چرد، بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسب است آید در عمل. بنده آزادی تما دارد ز زجد. آشق آزادی نخواهد تا ابد بنده دایم خلعت و ادرار جوست. خلعت عاشق همه دیدار دوست. در نگنجد عشق در گفت و شنید عشق دریا است قارش ناپدید قطره های بهر را نتوان شمرد، هفت دریا پیش آن بهر است خورد این سخن پایان ندارد ای فلان باز را در قصه شیخ زمان